آن روز بعد از ظهر جردن در حالی که سیخ روی صندلی شق و رقش در باغ چای هتل پلازا نشسته بود موضوع را این طور تعریف کرد که یه روز تو اکتبر سال 1912 داشتم پیاده روی میکردم یک کم از پیاده رو میرفتم یک کم از چمنها بیشتر دوست داشتم از رود چمنها برم چون آجایی که کف کفشهای انگلیسیم بود رو زمین صاف عذیت هم می میکرد یه دامن چارخونهام پاهم بود که گاهی توی باد میرخسید و هر وقت این اتفاق میافتاد رنگای قرمز سفید و آبی پرچم جلوی ها حسابی باز می شدن و به اعتراض میگفتن بزرگترین پرچم و چمن مال خونه دیزی فی بود تازه شده بود هیجده ساله دو سال از من بزرگتر بود و بین دخترای لوئیزویل از همه معروفتر همیشه سفید میپوشید یه ماشین سفید جورم داشت و تلفن خونشم تمام روز زنگ میخورد و افسرای جوان خوشتی به کمپ تیلور با خواهش و اعتماس میخواستم شبا با اونا بگذرونه حتی شده برای یه ساعت وقتی روز صبح رسیدم جلوی خونش ماشین سفیدش کنار پیاده رو پارک بود و با صدفانی که تا حالا ندیده بودم نشسته بود تو ماشین جوری تو بر همدیگه بودن که تا نرسیدم به چهار پنج قدمیش منو ندید و وقتی هم دید شد و گفت سلام جدادم بیا اینجا خوشحال شدم که من حرف بزنه چون از بین دخترای بزرگتر از خودم بیشتر از ازم از دیزی خوشم میومد از ازم پرسید دارم میرم سلیب سرخ باند درست کنم منم گفتم آره گفت بهشون بگم که امروز نمیتونه بیاد وقتی دیزی داشت با هم حرف میزد افسر جوری نگاش میکرد که هر دختری آرزوشه یه روز یه مردی اینجوری نگاش کنه نگاش یادم مونده چون به نظرم خیلی عاشقانه اومد اسم افسرجی بود و من تا چهار سال خورده ای بعد ندیدمش حتی وقتی تو لانگ آیلندم دیدمش نشناختم که همون افسره اینا عمال سال 1911 بود سال بعدش من خودم چند تا خاطر داشتم و شروع کرده بودم به مسابقه دادن و زیاد دیزی رو نمیدیدم دیزی با دختری که یک کم از خودش بزرگتر بودن میپرید البته اگه با کسی هشفر نش داشت م... شایعات وحشتناکی در موردش سر زبانه بود می یه شب مادرش دیزی رو دیده که رو بسته تا بره نیویورک با سربازی که قرار بود بر اونور اقیانوس خدافزی کنه جلوشو گرفتن و اونم چند هفتهی با تموم خونواده قرار بود بعد از اون جریان دیگه با سربازانه نمی و فقط با چند تا جوان تو شهر گشت که یا کف پاشون صاف بود یا چشمشون ضعیف و نمیتونستم تونستن باره درتش بشن. بعد از اون جریان دیگه با سربازانه نگشت و فقط با چند تا جوان تو شرگش میزد که یا کف پاشون صاف بود یا چشمشون ضعیف بود یا نمیتونستم وارد ارتش بشن اما پاییز سال بعد دیزی دوباره سر زاق اومد مثل قبل سرزنده و بانشات شده بود بعد جنگ قتی بزرگترها شد تو فوریه با یکی ای که اهل نیورلان بود نامزد کرد تو جوان شد زن تام بیوکنن اونم با چنان کعب و دبدبه که تو لویویل سابقه نداشت تام با صد تا مهمون از تا واگن اختصاصی پیاده شد و یه طبقه هتل مولباک اجاره کرد و روز قبل ازدواج یه گردنبند موروارید به دیزی داد که سیصد و هزار دلار میارزید من ساقدوش عروس بودم نیم ساعت قبل شام عروسی رفتم تو اتاق دیدم با اون لباس گلدارش به خوشگلی ماه جوان دراز کشیده روی تخت حسابی مز کرده بود و تو یه دستش یه بوت سوترن بود و دست دیگش یه نامه زیر لب گفت بهم تبریک بگو تا حالا مشروب نخورده بودم ولی خیلی خوشم اومده گفتم چی شده دیزی ترسیده بودم تا هیچ دختری رو تو اون حال نیده بودم گفت بیا عزیزم و دست کرد تو سطل کاغذ باطله و گردنبند مروارید و درآورد گفت بپر و اینو به کی که صاحبشه پس بده به همه بگو دیزی نظرش عوض شده بگو نظرش عوض شده و زد زیر گریه پریدم بیرون و خدمتکار مامانشو پیدا کردم در اتاق توقف کردیم و دیزی رو بردیم زیرا به سرد. نامه رو ویل ول کرد و با خودش آورده بود تو وان اونقدر فشارش داد که شد یه گوله خیز و بعدم وقتی فهمید که دیگه داره مثل برف وامیره گذاشت نامه رو بذارم تو جا صابونی. دیگه یک کلم حرف نزد. آمونیاک گرفتیم زیر دماغش و یخ گذاشتیم رو پیشونیش با هر بدبختی بود لباس تنش کردیم و نیم ساعت بعد که از اتاق اومد بیرون، گردن بند دور گردنش بود و روز بعد ساعت 5 که خم ببر رو بیاره با تام عروسی کرد و رفت به سفر سماهی دریای جنوب وقتی برگشت اونا رو تو باربارا دیدم و با خودم فکر کردم که تو عمرم دختری رو ندیدم که اینطور دیوونهی شوهرش باشه اگه تام یه دقیقه از اتاق میرفت بیرون دیزی دستپاچه میشد که تام کجاست و تام نمیدید که تام برگشته منگ و هواسپرت بود بعضی وقتا یک ساعت تمام مینشست تو ساحل و سر تام رو بغل میکرد چشماش نوازش میکرد و جوری نگاش میکرد که آدم دلش برای این ایندوتا میسوخت خندش میگرفت، ولی از اون خنده‌های بحت‌زده‌ی بی صدا این ماجراها مال ماه اوته یه هفته بعدش که من از سانتا باربارا برگشتم تام یه شب تو جاده ونتورا زد به یه باریو یکی از چرخ‌های ماشینش در رفت دخترم هم که همراش بود بازو شکست و قضیه رو کشون به روزنامه ها دختره یکی از نزاوتچای هتل سانتا باربارا بود آوریل سال بعد دیزی دختر کوچولوشو به دنیا آورد اونها یک سال رفتن فرانسه بهار من تو کند و بعدش تو دویل و بعد از اون برگشتن شیکاگو که بمونم همونتو که میدونی دیزی تو شیکاگو خیلی طرفدار داشت اونا با جوونای پولدار و عیاش میچرخیدن ولی دیزی از بین همه اونا سربلند بیرون اومد و هیچ خدشه ای به آبروش وارد نشد شاید به خاطر این بود که مشروب نمیخورد مشروب نخوردن بین یه مش آدم بد امتیاز بزرگیه هم میتونی زبون رو کنترل کنی هم میتونی اشتباهات کوچی که تو طوری لاپوشونی کنی که بقیه نبینن یا بهش اهمیت ندن شایدم دیزی هیچ وقت تو هیچ رابطه ای نرفت ولی یه چیزی تو صداش هست که دیزی حدود شش هفته پیش دوباره اسم گسببی شنید وقتی من از تو دربارش پرسیدم او یاه گفتم توی وسته گفتم گتسبی میشناسی؟ بعد از اینکه رفتی اومد تو اتاقم بیدارم کرد و گفت کدوم گبی بعد وقتی من تو خواب و بیداری براش گفتم با صدای عجیبی گفت باید خودش باشه. تازه اونجا بود که تونستم این گتس و به اون افسری که تو ماشین سفیدش نشسته بود ربط بدم. وقتی حرف زدن جردن بیکر تمام شد نیم ساعتی می که از پلازا بیرون آمده بودیم و سوار بر کالسکه دو نفره داشتیم از سنترال پارک رد می شدیم. خورشید پشت ساختمان های سر به فلک کشیده ستاره های سینما در خیابان های قربی به بعد پایین کشیده بود و صدای آواز صاف بچه ها که مثل جیر روی چمن جمع شده بودند از دل گرم شب به گوش می رسید من امیر عربم صاحب عشق تو منم یه شب میام به چادرت تو رو تو خواب می دزدمت. گفتم چه تصادف عجیبی تصادف نیست؟ نیست؟ گتبی اون خونه رو خرید که نزدیک دیزی باشه. پس در آن شب بهاری که او را جلوی خانه دیدم، گتبی فقط در آرزوی ستاره ها نبود. این مرد یک از دل شکوه و جلال بی هدفش برایم جان گرفت و قدم به دنیا گذاشت. جردن ادامه داد، گتسپی میخواد بدونه میشه یه روز عصر دیزی رو دعوت کنی خونتو بذاری اونم یه سری بزنه؟ از کوچکی تقاضایی که داشت شوکه شدم گتسبی پنج سال منتظر مانده بود بعد قصری خریده بود که در آن نور ستاره ها را بین شبپره های عبوری خیرات میکرد فقط به خاطر اینکه یک روز بعد از ظهر به باخچه یک قریبه سری بزند یعنی لازم بود من این همه چیز بدونم تا بتونه همچین تغازه کوچیکی از من بکنه؟ می ترس خو؟ برای همین این همه صبر کرد فکر کرد شاید بهت بر بخوره می بر خلاف ظاهرش در باطن یه آدم معمولیه مثل بقیه چیزی نگرانم می کرد خب چرا از تو نخست ترتیبه که ملاقاتو بدی؟ میخواد دیزی خونه ببینه ببین و خونه تو درست جفت خونه اونه آه جردن ادامه داد فکر کنم یه کمم امید داشت یه شب دیزی توی یکی از این مهمونییا پیداش بشه اما نشد بعد شروع کرد از این و اون در مورد دیزی پرسیدن که من اولین نفری بودم که دیزی رو میشناختم این همون شبی بود که پیش خدمتش تو باغ اومد سراغم باید میدیدی چه جونی کند تا برسه به اصل مطلب البته من سری پیشنهاد دادم که یه نهار توی نیویورک باشیم و با هم حرف بزنیم فکر کردم الانی که از هیجان دیوونه بشه همیش میگفت نمیخوام غیر عادی به نظر برسه میخوام همین بغل ببینمش وقتی گفتم که تو دوست صمیمی تامی میخواست بیخیال خیال کل قضیه بشه چیز زیادی در مورد تام نمیدونه فقط سالها روزنامه شیکاگو رو میخونده تا شاید ردی از دیزی پیدا کنه دیگر تاریک شده بود و دروشکه‌ای که داشت به زیر پلی میخزید بازویم را دور های طلای جردن انداختم و کمی او را به سمت خود کشیدم و او را به شام دعوت کردم یک دفعه دیدم که دیگر به گتسپی و دیزی فکر نمی کنم اما این دختر پاک و ورزیده و کمیاب که در دنیایی از شک و ناباوری بود بیخیال سرش را در دایره بازویم شوخ و شنگ و زریف تکیه داده بود یک جمله به طرزی شگفتنگیز در گوشم زمزمه می کرد که ما اینجا فقط برای دنبال کردن خواسته های من آمده ایم و هر کس تا توان دارد خواسته هایش را دنبال می کند جردن زیر لب گفت دیزی هم بالاخره باید تو زندگیش یه حرکتی بکنه میخواد گذبی رو ببینه؟ نمی نمیخواد چیزی بدونه فقط قرار تو دعوتش کنی برای چای. از حسار درختان تیرهی گذشتیم و بعد وارد خیابان پنجاب و هم شدیم یک ستون از نوری ضعیف توی پارک افتاده بود من مثل تام و گذبی نبودم که دنبال چهره دختری که در دلم بود در تاریکی غرنیزها و در نشانه های کور دروبرم بگردم پس دختری که کنارم بود را محکم بین بازوهایم گرفتم دهان خسته و تحقیر کنندش خندید و همین باعث شد بیشتر او را به سمت خودم بکشم این بار به سمت صورتم